بسم الله الرحمن الرحيم والنساء فيه ضربان، وزنان دار رابط بالطلاق بردنو عند شون بحث قبل ما تلاقوت ضرب في طلاقهن سنة وبيدات وزناني كدار تلاقشون سنة وبيدات وجود دار يعني طلاق سنة و تلاق پس گروهی از زنان که در طلاقشون مسئله سنت و بدعت وجود داره و هنه این زنانی که در طلاقشون سنت و بدعت وجود داره ذوات الحیزی اون زنانی هستند که دارای حیز می باشند عادت ماهیانه دارند آن یوق طلاق فی طهر غیر مجامع فيه. سنت طلاق سنت این است که طلاقو در پاکی بدهد که در اون پاکی با زن همبستری و جما نداشته است مثلا زن حیز شد حیز که تمام شد پاک شد نزدیکی نداشته باشد اونو طلاق بده این طلاق سنت است و البدعتو انیوقیت طلاق فی الحیز او فی طهر جامعه هفی طلاقی که بدعت هستی هست این است که طلاقو در حیز بده در دوره عادت ماهیانه طلاق بده یا نه در دوره پاکی طلاقش بده منطقه پاکیی که در اون پاکی با زن نزدیکی داشته هم بسری داشته آمیزش داشته اگر زن حیز بود طلاق داد این بدعته اگر حیز تمام شده بود بعد از حیز که پاک شده بود بازن نزدیکی داشته بود و در این پاکی طلاقش داد باز هم این بدعته پس طلاق سنت اون تلاقیه که در خود روزهای حیز نباشه بعد از حیز باشه ولی در اون پاکی بازن هم نزدیکی نداشته باشه این نوع اول از زنان بودن دو و ضرب لیسه فی طلاق هن ولا بده نوعی که در طلاقشون سنت و وجود ندارد هر وقت طلاق بده سنت دیگه اونجا سنت و وجود ندارد و هنه اربعون این گروه از زنان چار طبیل باشد یک اصاغی ره دخت کوچک، زن کوچک، زنی که هنوز به هیز نرسیده طلاق این دیگه سنت و بدعت نداره دو وال آئیس زن آئیسه اون زنی که حیزش قط هست حیز دیگه نمیشه اصلا حیز نمیشه سه والحاملو زنی که در شکمش بچه هست این هم سنتو و بدعت نداره چهار والمختلعتو التي لم یدخل بها زنی که خلع کرده نکاهش رو با مرد در مقابل عوض معلوم فسخ کرده و مرد هم با اون ها آمیزشی نداشته این زن مختلعه هم که مرد با او آمیزش نداشته تلاقش سنت و بدعت نداره چرا؟ چون اخه این ای برش نیست چون بر این ای نیست باعله فصل بعدی تلاق الحر و العبدی طلاق شخص آزاده و طلاق شخص برده غلام ويملك الحر ثلاث تطلیقات آزاده ستا طلاق در اختیار دارد مالک ست طلاق است پس آزاده تلاغ داره زنش رو یک دو سه تا تلاغ دار اختیارش هست والعبد العبد و تطلیقه تین اما برده دو تا تلاغ دو تا رو که داد دیگه خلاصه خلاص اما آزاده نه اگر یکی رجعی داد خب دو تا دیگه مونده دومی رجعی داد سوومی مونده سومی رو که داد دیگه خلاصه اس ازادت سه مالک سه طلاق است و سه بار طلاق دادن و برده دو تا طلاق و یصح الاستثناء في الطلاق اذا واصله به صحیح است استثناء کردن در طلاق زمانی که اون استثناء رو واسل کرد مثلا گفت تو تو تو دو تلاقی جز یکی یکی رو استثناء کرد پس اینجا دیگه یکی واقع میشه انت طالق اثنتين الا واحده الا واحده استثناء دیگه ولی این متصله اینجوری نجورینا باشه که امروز بش بگه انت طالق اثنتين فردا بیاد بگه الا واحده نه وصل باشه بس صحیح است استثناء در تلاق زمانی که واصله به زمانی که اون رو واصل کرد به اون تلاق. بس استثناء در تلاق صحیح است. توسه تلاق جز دوتا خوب. ویصیح تالیقه به صفت و شرط. همتونین صحیح است معلق کردن تلاق. به صفت و به شرط به صفت چطور مثلا بگه تو تلاقی در فلان ماه تو تلاقی زمانی که باران ها بیاند اه این صفت که محقق شد طلاق میشه پس صحیح است معلق کردن تلاق به صفت تو تلاغی در فلان مح یا زمانی که خجاج بیاند خلاصه با صفت باشه و شرط شرط مثالش ماننده چیه؟ ماننده این که بگه این دخلت داره فعنتی تلاغه اگر وارد خونه بشی تلاقی، اینجا معلقه به شرطه اگر وارد شد تلاغه میشه پس ویسح و تلاغه به صفت و شرط و صحیح هست معلق کردن طلاق به صفت و شرط و چه زمان طلاق میشه؟ زمانی که اون صفت محقق شد زمانی که اون شرط محقق شد اگر نشد اون شرط محقق دیگه طلاق نمیشه و لایقا اطلاقو قبل نکاح مسئله دیگری این که قبل از نکاح طلاق واقع نمیشه شخص زنی رو اصلا نگرفته میاد طلاقش میده این طلاق واقع نمیشه بله چون زن زنه اون نیست تا بیاد تلاقش بده و اربعاتون لا یقو تلاقو هم و چار گروه هستن که تلاقشون واقع نمیشه چار مرد وجود داره که تلاقشون واقع نمیشه اگه تلاق بدن تلاقشون واقع نمیشه یک اصابیو بچه دو و دیوانه سه والنائمو شخصی که در خواب تلاق میده تلاقش واقع نمیشه چهار والمکره شخصی که مجبورش میکنند. ها کلاشین روی بالای سرشه یالله یا طلاق میدی یا میکشی این اگر طلاق داد این طلاق واقع نمیشه فصلون احکام رجعتی فصل بعدی در رابطه با احکام رجوع بازگشت از طلاق طرف طلاق داده پشیمانه میخواد برگرده از این طلاقش احکامات رجوع از طلاق رو میخونیم الان واذا طلق امرأته واحدة او اثنتين وزمانك كتلاق ذات زناش بعد الدخول بعد آميزش واحدة يكتلاق او اثنتين يادو تلاق، فله مراجعتها ما لم تنقضي إدتها مرد ميتا وناد برقر داند را مادامی که اده اش تمام نشده هست مثلا سه طلاق گفتیم که آزاد در اختیار داره اومد یک طلاق داد خود تا سه طاقی اده اش تمام نمیشه اینو قبل از پایان اده ناغ من پشیمانم از این طلاق بیا زنمی خلاص زنش میشه دیگه اینو میگن رجوب پس میگه زمانی که طلاق داد زنش را یک طلاق یا دوتا فلهو مراجعتوها مالم تنقضی ادتوها مرد میتواند آن زن را برگرداند مادامی که ادتش تمام نشده است فا این انقضت ادتوها اگر ادت تمام شد طرف زنش یک طلاق داده یک سال بعد پشیمانه اینجا دیگه رجوع نمیتونه بکنه بلکه اینجا باید با نکاح جدید حل له حلال له نکاحها با عقد جدید حلال است برای این مرد نکاح این زن با عقد جدید بله زن راضی بود با عقد جدید میره باشه ازدواج میکنه چون عده تموم شده ولی اگر عده تموم نشده باشه زن اختیاری نداره مرد رجوع میکنه خلاص تموم شد رفت و تكون معه على ما بقیه من الطلاق و این زن میباشد با این مرد با طلاق هایی که باقی مونده یعنی اگر یک طلاق بهش داده بود و رجوع کرد مرد با این زن زندگی کرد چند تا طلاق دیگه باقی مونده؟ دو تا دیگه اگر دو تا دادو بعدش رجوع کرد خب یکی دیگه باقی مونده پس می باشد با اون این زن می باشد با اون مرد علا ما بقی امین طلاق با طلاق هایی که باقی مانده اند خب این طلاق ها اما اگر سه طلاق داد زنو لم تحل له الا بعد وجود خمس شرایط اگر سه طلاق داد زن را حلال نیست این زن برای این مرد مگر با پنج شرط یک انقضا و عدتی ها اده این زن از این مرد تمام بشه مرد که این زن رو سه طلاق داد اده با تمام شه یک شرط اولینه دو و به غیره. این زن بره با یک مرد دیگه ازدواج بکنه سه و دخولها بها و اصابتها. باش دخول انجام بده آمیزش باش, باش داشته باش چهار و بینونت و آمن از این شوهر دوم این زن جدا بشه و انقضا و عدتی عمل و عدهش ادت از این شوهر دوم هم تمام شه پس اگر کسی زنش رو طلاق داد سه طلاق برای این شوهر حلال نمیشه این زن مگر با این پنج شرط از شوهر اول این زن از این مرد عدهش تمام بشه بره با شوهر دیگه ازدواج بکنه اون شوهر دیگر باش آمیزش انجام بده نکاح خالی کافی نیست بعد از از اون شوهر دومی جدا بشه ادهش هم تموم بشه اون موقع اون مرد اول میتونه بره باش ازدواج بکنه